یکرانی عزیزو خوشویس لطن لبه خوشحالین لبشی تلوپینزی خوین نوی کتبی چشت مجاوری حجاری مکریانی حتی نو فرمون لگل بن. هجاری مکریانی لیرانوی سرگزشتی ژیانی خویده پش اوی که لماسکو دگره تو دگه تو قامشلی داله اواریک لقامشلی رموی برپرسی لیجنی قامشلی بدکه برد میو مال کشیو بخوم دستی کرد بجنیودان بوانی دگش هزب راچون دیگو نهیز نه دادن نه دهیلن ده گنم بو آونکو که اینا منیش پیامود حوال رمو اگر کونیک لپیست بیه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 اگر هر یکی دو خزمیان ها او بونه 3000، 3000 سی هزار در کراوی دولار ورگر حزبی که به هزو بربست نکره اویشوتی زوربین لسر تو بگش منده هاتون لانوای خطای ام نگیش توی ماسکو منیشوتم من در باری ایوه هیچ مبکس نوتوا هروتو ما ویزک من تاو نبو اگر اوان امشان کردو تمایی گلی خطای کم نیه ها جواب وویتی دجا چار چیه چار اگ اغا قوش بگ دیگو دگل یک یک شرمان کرد شق یکم دبرزگی حالده شودایی شیهات بو وطبوی قوش بگیان کوراکم تریپیو بند نا بی الاج اکی بکا اوش وطبوی بودای کم من دو عاملی کردوا جشخ چون بمن چارده کرده حزبی شوعی لسوریا زور به حزبو پیو لایوا بو اتوانن حکم بگر ندست باسی یک بونی سوریا و مصر پیدا بو حزب شعی همو تبلیغات خوی با سرگرتنی او کار ترخان کرد بو چن مانگ همو رنج لسر یک و تاری سرکی رنجنامه نور که ارگان حزب بو بتاریف ناصر و یکیتی پردک رایوا یکیتی سری گرت. ناصر لجوابی تبریکی خالید باگداش سپاسگزاری کرد عبدالحمید سراج که کردکی شامی بو گراب وکیل ناصر لسر سوریا عبدالحمید او پر ریحاو کاری دگل خالید بگداش دکرد. پیوی دولت باولاد دا دگران، اندامی گوری حزیبیان دگل بو. هر رأیت یک دوستی شوئیان زوید دینیو با کسی تر نداره. هر کسی با شوئی ناسین رابا ادرسو دو اکسیان لیورد له لهموشارانیش با ارای ناسران، لپر لنیوشویگ دا بچن خالید بغدادش بگرن، مال نبو و برنه هد هرچی دنک جویی که بخالی پاشا دابو گیراو لزیندان توند کرا مگر اوانی کتوانی بوین حال نو خوب شر نوا پاش نیوارویک رمو خوی به مال ما هر لره ملی لجنودان به نصر فاشستی پیوی استعمار دا منی رمو جیان شتیوامل ناصر پیوی چا اگر باور باورناکی او پنجا جمار نور بزرن چونی بازدکا جمیل شویې زور به حزبون د انټونیې کتی ټک دن خلید بغداش بو وای کرد تا وایلې به وثم د لین هتیوې کې زور به فرد او کرد دای کوم بمری باو کوم جنې چې حزبینه مېش پی فرد به وم باو کمد دای چې مردی به هتیو باز وکړ فرای هر دښند کوت بغداش سوریې پېکم بو خیال کرد اگر مصر بکی و تسر سوریه، حاکمت سوریه و مصر زور باشه. بله هم ایتر زبیهی لشام لیان و خو ناملکی کی بناوی کوسمو پولیتیا بزمان عربی درکل. با قولی عرب، قرقه ترتر کرده. زبیهی او تی روژیک چوار کومونیستی توپیوی پیبرز حت نلای روشان خانم. گوتیان خالد باگداش دل او ناملکی خانم نوسیوی و بناوی زبیهی درچوا. گ خانم بکام واشنینگتویی به هواли خالد بالین من نمیسی و اگر ببی اسم واقعی لیم هیا بر راه لسر حتیوان ل آدم زرر خالد وست بو بلام استش چون رازی کیلا لایاونای درکی نی شاید بر روالت دوستم بون لبنانو بلااین دکر دواکه هجر جاسوسی نوری سعیده شوک لمال درک توشی کره کیمال حجابم سر خوش بو ویی جاسوسی نوری سعید لرب منی د کوژم دنګم نکرد قرامو معلوم نشوم بدی وخن کبره یک بانجی کرد ما دره هنګی د هاتو زور پریشان بو وتی سیدا بغیا ام شو حسین د کوژنو د چاله خیدخن حسین هر او ابو که رشیلې د کړدم غارم ده خسته بو و نو خسته بو یعنه نوجوری که لیماله جویم لیه بو بابی ابرو من بو نما تو هراشن میوانی غریبی ایمه پالم بدر که و نه بی که بخاطری خدا من هیز دل اشعویه کم نیه تا حسینم خلاص کرد زور به زحمت امجر دگل حسین و ابو بوینا دوست او من بیک تری چند روز دوای گرانو من لسفری اوروپا نامه کی زبیهیم بو هد ابو دولت بچورت چارت حسابی کرد و سینم و منوتوه هر یک 444 و چلو چوار لیرو دقت روش خرزرین که من خرس کرده خانمی دیک سینم کمدیر مدرسه قراره با اقساط بیده روزیک ما میداره یان پول بیانا یان بچو زندان لناو مقاموقی هاتو چوکرنده فیز مالکم دایو خانوکم گواریو خم و گوریو توش آگاد لخد بی چوار من یک بسرا دا رابرد. لبردر که قوخانه دانشته بوم سه پولیسو افندیک هاتم پولیسکان چونه قوخانه او بری جاده معمور هاتلای من کرد بو وتی من کرری فلان کسم هم نشوتم آی چونی چاکی باو کچونه لولان داووتی اری سیدا توقت چوی آلمان وتم ای چون نچوم آی خدا او سرچومی رای نو او بعد دوائی وتی سیدا برلو باسم بابکی او دو منگل شوین تو باو سی پولیسه و دیه بده دکم کس نگود عبدالرحمن حسنده ناسم هر نوسیو ما جگه معلوم نیه بین ایستاش 444 لیرو دا قروش نغید بخمشت موا خو من درام هنده لید بگررم تاسیک برد میوا آی خوایا چون پیو بو پاش کمی بودم برا با پید بلیم بخودات جگله هندیک ساوار و آرد هیچ چی ترشک نابم دا چریده به بمګری وحبسم کې که عامادم بل امرنګ باوکد کشویر لګوندي حاجی رشک میوانی بون درنیات برنجی یثر دوای خود ده بریک دامه تو زګ وسته و پاشانوتی د باشه تبلیغه کې من خلاصیم به من جوتم چې اگر امزای کم یعنی ها ورن بمګرن فرخچیه او چې ادي چارجیه وتم چرهر اویه بنوسنم ديته به برهته اتر اوشوازي هنا واتي باشا خمنا خمنا بر نحلتي بابو دايكم خواه حافيسد به انتخابات بو ناصر عبد مدير پوليسي تربس بيهات واتي وراح البجاردن واتن بخوانا ايم باشان واتي بناساكم دي بوت موركم دناء لك هر دكوه وك هميشا اعلان كرا ساتي نوتو نولا دا ناصر ينهاب شاد حکم ناصر زور د کردی کوردی خراب بو تنانت لدانې صفحه کوردی لقهو خانن قداغه کرا تر سولرز پیدا بو خبر داکوت پولیس دېحات دگران ګرن بوک تی هرچی باسی ازادی کډ دکا مال نگران بون کتوشی توشي هر بن وتم او جو رکتبان مسوتنن د ان بم مال خون امدن سالک لپناویاندا زندانی پکشم به شرطه کومله مجله هاور ک دبر جراو بیدن بخم نا به د به سوداسریګ کتابم هنانې مال لسر تاګه ريزم کړن جنک حادثو تی خيزاني حسن اغا دله اگر شته چې وایه ل فوتاني د بوم بنيره من د شرموه دفتر شعرانو دفتر کی یاداشت عمر خوم نرد پولیس به دی وربون مليان لپشکنینه بلان بو توتن بو نه بو کتاب هر روزه برنګ بری هاد امانتیا کې منی برد کجنی حسن اغالده کن داری چم شرد بونیه و مجلکه بو با ای خوام بلا امروش که برو بغدا دهات موا بونبرد نوا وتم تم حیفه لکتی بخانکی خودانده نبی تا لبیر نچوا جاریک زمان لشم لکولان یک توشی دکتر احمد اسمن هاتم به فردباری و تی هر دو به شو میان بی لریجی چونمالدا زوری گشتی بر جاکاریو چوار بطلش شرب وتم احمد اوی تو کرد بشی چوار کس پتره و تی ناکه کسرم بجورده گرد جمال حیدری رئیس حزب شوی عراق که زوری همیشه لنایی کرد, کرد و کردستان بودانشتین با کردی قصیده کرد لیوانی که شراب خوارده و روی کرده من کک تو دبی شعری باشت من بو بلی اوانی تایستان و سیوتن باش نین باسی کوریا و دنیای دروا بکرمن نایا باسی کردیتی آزادی کردستان بنوسا بیدنگ لینگم تپشت پیشت اجنام کرد، رازبوم او تف دست کرد، و, چه و با کیا؟ چه دا وتم و تم کار جمل؟ نامخواه با پیاله شراب اونده کوتو یا سرمیلت پروری، با خواه وانا کم شام لشم دا گل زبیهی که همیشه فکری قر و خیال پلاو من دکرده و فؤاد قدری من دید، چوینلی عزیز شریفیش ک حقوقی و چپی اکی بناوبانگ بو، زور من بو ناصر اونده د جنوري سعيد او پیماني بغداديا شش مليون کورد ل عراق اعلان اگر اوان له خو دل خوښ کاو د نن بدا چاكترين چخي بكر بردو بارفرو فشالگو او دانا وتيان فكري باشا فواز با صديق شنشلو فیاق سامرای كتبتو ک عراقیو دوستي ناصر بونو دغل عزيز شريف د چونه قاهره خوارستان تيري شوري ګرتي بشي كردي قاهره کرايوه امجر خيال منکرد کرنگ شای ایرانیش لبر ناصر کیچپ کیوته کولیو رادیوی کوردی دامذرینه ماوی کی پیچو رادیو ایرانوتی لسره منویاتی شانشاه رادیوی 100 کیلوواټی لکرماشان دامذرې کوردی لسره بلاو دکریته وا شوی د سپیکر د رادیو جمن بر رادیو نوسندو سندوه بزنین دلشی آیت الله مردوخ به وتار کردیو که اگر عربیه کت لیه بجرده با فرسی که رود دمایه او دوسیه کرگو بوگی تدابو لقصه و گرانیکانی تریش هر کرده و دمیخوار دکاته و تاوک فرسی بچه بداخوه نامه که بلند بالام لو باریونوسی که بابا هیچ کرده اک دو زمانده نو حل شل و نگه به هزاران لکردی سوریا چاو نور ری مرحمتن یه و هیس نبی گرانیکان با کردی بنو میانگورن امزا ایراندوست. نامی محسین ایراندوست پشتن شوک رادیو کرماشان لباسی نامه گیشتو دوتی آقای محسین ایراندوست نامه کت گیشت دامن بلیجنه تایبتی نامه یکم بو سعید قزاز نوسی که وزیر داخل عراقو کردیگ بو که فلان من بیستو مدلن کرده که بشرفی راست دوی باورم نکردوه چون که بردسته نوری سعیدی رادیو بغداد لپستا جنیو بناسره ده خط جارک نالی او کردانی سوریا چن بدستی او زلیلن، ناویرن جو کوردی کردی بگرن، صفحه کردی لیدن، لباتی او باسی وشتر بکن، باسی اوش بکن کزور کاری گرو عبروی ناصری پیدا چه، اگر او بکی باور دکم کشریفی، امزا بابکر بکر، لسر پاکت خصوصی، لبیروت خست ما و وا. بزانم زنم پی تأثیر شیبوبو چونکه زور زو بغداد لسره کوردی سوریه ناصری و بر حمله و جنودا فشار تا لسره کوردکان جزیر سوقبو بل ام لاط و نه به او نه مانن بتنیا کردو زبیح یومن و دو من به یک پیاو حساب بوین او کوردانی که چوبو موسکو بوبش دریکدن لویستوال لگل سر دستکین گرانه و گلم لیکردن که بوچی لسره رادیو موسکو وتاریان به عربی داو و به کوردی نبو اوانش وطیان راگه کردی خوین نو نبو بلا موامان کرد واب چه؟ زور من خزمت با کرد کرد. منش پرسیم که که نوسراوکی امت دا بچه؟ وطی ای بخودا لبیرم چو؟ استاش هر لچمدانکم دایا؟ پرسیم دکری دا بیده یو بخوام؟ وطیان با چی تا؟ وطم دکم دا, دا گل می دقا برخن؟ یمه اوانده پیوه مندو بوین؟ تو لبیرد بچه؟ عزیز شریف که موسکو گره بواوا، لمال روشن خانم بسرته پیوتم، لماسکو بدزی او ملا مصطفیم دیوا، و توی هجارم بوا موسکو سلایومنی پیب گینا. پاش یازده سال، او حوال جربو خبری برزانی بزانم، نجیب خفاف، لاوشی عراقی کچوب بوا موسکو گره او، با. و بال بستوی خوی، و تی چونه لای نازم حکمت، وتمان چانوبکین زور ل لاوانی دنیا کو کیناو دردی خومانین بوبلین او شوتبوی اول ملی من, من داواتې گشت اندکم خرجج دخمه سر لاوانی شوروی یو چی تاندوی بلن бош تان ترجمه دکریه سری وقت ساعت 4 یاره پتر تر 500 کز نمینده د جاتی روسیا و نامو لاوخی ل سالون کوبونوه چانورین سروکی دسته تشریف بین قسین بوبک چاره یک رابرد برد نیو ساعتی پیچو هر نهد. نخیر. هر چی تلفون من کرد پیدا نبو که نبو. نازم حکمت روی کرده میوانه کن. و توییتی من کراو ما وکیلی کرده کن. قصدان باب کم. تیری هواری کرد کرد. زوریان بولا چپلا دا. یک لخصکانی او بو. من که کردستانی آزاد دا نسمو ترکیا لا موای ترکیه دولت نیو بونی آزادی نکردوا. می شاو درنګان یک که من تا و وټمن الکیه بووی وتی کارم هبو وټمن کاری لو گرین سر کنه هاتی چی وتی کارم هبو برایو کوچی نه پیو شونی او کار گرینګه رون بووه سردسته ل آسانسور ده مهندسی کی مینی دیوا بونه اش نو لایډ او تمال او لکوونه وخوی بواردو نازانم نجيب درې دکر دیانه خو دې زانی زبی هات هاته جزیر وتی دموی سرک عراق بدم، بزنم با پارتی هیچ نشتو مشرمان با نانی رتشم، منی جوتم، ما چو خطره؟ اوی جوتی، نه ملا، ملا علی کلتپایی جواب تلگراف دا گوتویا بشیه قیناکا، جران هر بوی دانوسیم نکی بیوا، زبیحی لموصله و تلگرافی کرد، ماری لبیمارستان ز. خواه شکر به سلامتی گیشت، پاش شش روش سرو کلی پیدا بو، وی ملا، خراب کردم. چوما اوتیل لکرکوب. پیامک بردم مال خوی. پولیس رجابونه. اوتیل من بگن. نه زن چون زنی بو. با پلیس لری مسله و هات ماو. پرسیم. عادی آن لری قرض چیه دپید دا. کوک کوش کانت. مال عربی کی چول میوان بم. بیانی ودی. چند راد قبل مامد پی خواست او کوشانم بدی. نم دا بعد دهاد لری دیکوشتم. منش سریک میانه او وتم. ای افریم بو عرب تا لو ژانه بتمو ام شره چقی شو بیکاری و سرباری خوم ورزبو هیچ همیدیشم بهس نه ما بو بر یارنده به مغلوبت ما مصر حول شاگرد اکاسی بدمو هجاری خوم بکمو کس نم مناسه هر دو فکرانه دابم شو رادیو بغداد خبری دا کس بنوری سعید و ملک دسنه ترکیا بیانی معصومتی بو رادیو ناخیو وتم رادیو چی وسق بابا نه د چنه ترکیا دا خود شدا یو کورد کرد موا میوزیک مارش بو بستم بیاگرانی عزیز و خوشویز لیردابم شویه حتینا کتایی بشی چلوپینجی خویه نوی کتیبی چشتیم جوری هجاری مکوریانی تا بشکی تر شوتن ارام جیانتن پربیت لشادی و بختواری